بسته های کتاب هایم از راه می رسند از انبار پیرمرد و کاهدانی پدرم بسته های خاکالود را یک به یک باز می کنیم اصل مدت ها مپوت نگاه می و عاقبت میگوید: خدای من خدای من چقدر کتاب چقدر کتاب تو واقعا همه اینها را خانده ای؟ بیشترشان را پس تو، تو از پشت یک دیوار بلند کاغذی و مقوایی به زندگی نگاه کرده گیل مرد. از پشت یک دیوار تنومند تو هیچ چیز را به همان شکلی که هست ندیده ای. خدای من چه عمری را تلف کرده ای؟ چه عمری را باطل کرده ای. گیل مرد آرام ناگهان فرو میماند. ماند. یک دم گمان میبرد که زن، شوخ طبعی می کند اما در چشمان سخت و سیاه آزری تو چیزی می بینم که به درماندگیم می کشد من خود را برای مقابله با چنین احساسی آماده نکردم و هرگز به چنین برداشتی از مفهوم کتاب نیندیشیدم دیواری میان انسان و واقعیت اینها پنجره است اصل دیوار نیست اصاره واقعیت است از کاغذ و مقووا بشنو گیل مرد بشنو و یادت باشد که من موش های کتابخانه ها را اصلا دوست نمی دارم تو هرگز به من نگفتی که زیر کوهی از کتاب دست و پا میزنی و الا برای زندگی با تو شرط ترک اعتیاد می گذاشتم. تو زندگی را خوانده ای لمس نکرده ای تو در طول و عرض خاک مقدس زندگی راه نرفته ای. فقط زندگی را ورق زده ای و بر زندگی حاشیه نوشته ای. جنگل تو است. توفنگ تو کاغذی، اعتقاد تو به مردم اعتقادی کاغذی و پارگی پذیر. تو اطرها را خانده ای، دشتها را خانده ای، نگاه ملتمس بچه ها را خانده ای. کتاب آشق نمی شود، آواز نمی خاند. پای نمی کوبد. به دریا نمی زند. درد مردم را حس نمی کند، آرام، آرام اصل. فقط مقدار فاصله حد ارتفاع صدا را مشخص می کند. من و تو روبروی همیم، بی فاصله، آرام آرام باشد. گرچه برای آذری کوهی، کوتاه آمدن، آسان نیست من مدتهای مدید در کوه های سوالان سخن گفتم و باد همیشه نیم بیشتر صدای مرا به راهی که میرفته برده است و مختصری از آن را به گوش مخاطبم رسانده است اما حرفت را چون درست است قبول می کنم. سرت را قدری بیاور جلو تا باز هم آهسته تر بگویم بهترین دوست انسان انسان است نه کتاب کتاب ها تا آن حد که رسم دوستی و انسانیت بیاموزند معتبرند نه تا آن حد که مثل دریایی مرده از کلمات مرده تو را در خود غرق کنند و فرو ببرند تو در کوچه ها انسان خواهی شد نه در لابلای کتابها تو در کوه ها در جاده ها و در کنار ستمدیدگان واقعی رسم زندگی را یاد خواهی گرفت نباقوت خوردن در آثاری که در در بسته نوشته شده و نویسندگانش هرگز نسیم را ندانستند و قایقی در تن طوفان را از همه اینها گذشته من عشق کتابی را هم دوست نمی و تسلط کتاب بر خانه را هم من دوست ندارم که وقتی برای کاری صدایت می کنم جواب بدهی همین را که تمام کنم میآیم. من از این جواب بیزارم و از آن کتاب که مثل صخره ای میان دو عاشق قرار می گیرد. میفهمی گیل مرد کوچک؟ میفهمی؟ ببینم اصل. تو تو برای مبارزه با کتابخوانی دوره دیده ای؟ بله. بله. من دبیری داشتم. که مجموعی از شریف ترین دلائل را برای کمخانی در اختیار داشت او می گفت صد کتاب برای یک عمر بلند کافی است و آن صد کتاب را هم فهرست کرده بود و آن فهرست را هم سال تکثیر میکرد و به یکی یک که شاگردان تازه اش میداد آن فهرست را داری خیر یک بار که به خانمان حمله کردند آن را هم بردند میتوانم آن دبیر را پیدا کنم همانطور که آنقدر گشتی تا یک کندوی اصل اسب پیدا کردی؟ نه. اعدامش کردند. خوه خدای من. فقط به خاطر همین فرست؟ خیر. به خاطر آنکه به جای کتاب خواندن زیستن با مردم را تبلیغ می و اندیشیدن را و عمل کردن را، پیاده رفتن، بیل زدن، سخن گفتن با دردمندان، دویدن در دشت، خندیدن، نترسیدن. پیامهایش بسیار ساده بود و راه درست ارسال آنها را به درستی میدانست. در فهرست او یادت هست که از مارکس هم کتابی بود. بله، فقط یکی، از لنین، فقط یکی، از کتابهای اسلامی، فقط قرآن و نهج البلاغه، شاید یک کتاب بسیار دشوار هم از مذاهب دیگر اوستا، تورات، انجیل، اپانیشاد و گمان می‌کنم مهاباراتا و سخنانی از بودا از شاعران دیوان حافظ، ربایات خیام برگزیده از غزلیات مولوی و منتخبی از شعر معاصر نیما، شاملو، فروق، سهراب، سایه، کسرایی احمدی و اخوان، خدای من، او چطور توانسته بود زندگی را این طور فشرده کند؟ با راه رفتن در کوه، اشک ریزان نگاه کردن به بچه ها، نشستن با تنگ دستان، دهقانان، کارگران، خودش وابسته به کدام مکتب بود، زندگی و همین صد کتاب. تزادها و تناقضها را چطور حل کرده بود؟ تضاد و تناوزی حس نمی کرد. بسیار آسوده و بیدغدغه بود خوب گریه می کرد. خوب می خندید وقت اعدام هم با هم که نمیشد شد پسر جان شنیدیم که بیریه خندیده بود و فریاد زده بود من خوشبخت و آشق می میرم از او کسی مانده است یک دخترش را بعد از او اعدام کردند دو پسرش و همسرش گریختند و تا چند ماه پیش یقیناً زنده بودند در گلشاران شما پشت سوالان پدر برایشان کلبهای ساخت و زمینی را شخم زد و چند گوسفند یک جفت گاو و تعدادی مرغ و خروس ایرانی به آنها داد نزدیک کلبهشان چشمهای هست و چند درخت و یک کندو گندم و جو میکارند و همان صد کتاب را هم با خود دارند بعضی از آنها را بعضی را هم از حفظ هستند مثل حافظ و خیام کاش آن فهرست را داشتیم. من من همان صد کتاب را نگه می‌داشتم و الباغی را میفروختم کنار خیابان نام بسیاری از آنها را میتوانم به یاد بیاورم بیاور و من کنار خیابان جلوی دانشگاه تهران مثل آنهای دیگر بساتم را پهن می کنم و کتابهایم را می فروشم می و می فروشم این کار که عیب نیست؟ هست اصل؟ نه اما آن گیل مرد پیر می گفت که تو کتاب کتابهایت هستی و چند بار خانده ها را هم نمی بخشی نمی فروشی اگر راست می گفت که یقین می گفت چرا این طور شتابان تسلیم می شوی و تغییر عقیده می دهی مرد؟ من سالها بود که فکر می کردم این همه خواندن بیهوده است، بیماری است و در پی باد دویدن است. من حس می کردم و زیر لب می گفتم که راه های پیچا پیچ را در کتاب پیدا کردن و در کتاب ها پیمودن کار کودکان است. اما باز هم در لابلاه کتاب‌ها پی چیزی می گشتم که نمی چیست؟ پی چیزی که عاقبت بیرون کتاب ها پیدایش کردی راست است و مدت ها بود که کتاب خستم می کرد اما می ترسیدم. می ترسیدم و احساس خجالت می کردم که بگویم تو بانوی آزری من امروز زربه ای زدی که آرزویش را داشتم اما این را هم بدان که کتاب فروختن کنار خیابان از تو بر نمی آید مرد برمیآید، آید دید سال گفت نگاه کن به بازی گنجشک ها روی برف چه آسوده و بیخیال میخندد گیل مرد کوچک اندام پاسخ داد زمانی که کودکی می‌خندد باور دارد که تمام دنیا در حال خندیدن است و زمانی که یک انسان ناتوان را خستگی از پای در می‌آورد گمان میبرد که خستگی سراسر جهان را از پای درآورده است چرا ناامیدان دوست دارند که ناامیدیشان را لجوجان تبلیغ کنند چرا سرخوردگان مایلند که سرخوردگی را یک اصل جهانی ازلی ابدی قلمداد کنند چرا پوچگرایان خود را برای اثبات پوچ بودن جهانی که ما عاشقانه و شادمانه در آن میجنگیم پاره پاره می پار پار کنند آیا همین که روشن فکران بخواهند بیماریشان به تن و روح دیگران سرایت کند دلیل بر رضضالت بیحساب ایشان نیست؟ من هرگز نمیگویم در هیچ لحظه ای از این سفر دشوار گرفتار ناامیدی نباید شد. من میگویم به امید بازگردیم قبل از آن که ناامیدی نابودمان کند. آشق تکدی نمی کند آشق حقارت روح را تقبل نمی کند آشق تن به اعتیاد نمیدهد، عاشق آشق سرشار است از سلامت روح و ایمان آشق زمزمه می کند فریاد نمی کشد.